بسم الله الرحمن الرحیم جلسی اول کلاس فقه مقارن استاد بزرگوار زیایی دوشنبه چهارده شهریور شهری بر ماه 1401 که چهار سد و یک دیگه ما همسال میگم هم ایتر در خدم محظر مبارک شما عزیزان هستیم فقه مقارن معروف هم میگم فقه مقارن, مقارن. مقارن استفائله یعنی شخصی که کسی که در واقع این تطبیق رو انجام داده ولی خب سعیش فقه مقارن هستش در جوام دانشگاهی تو رشته حقوق یا حتی رشته فقیشون یه درس اینجوری دارن به نام فقه تطبیقی یا بهش میگن حقوق تطبیقی اینا حالا با توجه به سرفصل‌هایی که اون درس داره بعض یا حقوق تطبیقی مثلا ایران با کشور دیگه هستش مثلا از نظر حقوقی تو بحث نفقه تو بحث هزانت تو بحث طلاق و نکات دیگه و گزاره‌های دیگه حقوقی که داریم ایران چیه و سایر کشورها حالا سایر کشورها کشورهای اروپایی خوده خود کشور اروپایی با هم تفاوت داره کشورهای آمریکایی خود کشورهای آمریکایی حتی خود کشور آمریکا ایالتاش هم با هم گایقات حقوقش با هم دیگه تفاوت داره چون گایقات حقوق رو بر اساس زمان سریعاً تغییر میدن بر اساس محیط جغرافیایی تغییر میدن بر اساس مشاقل حقوق رو تغییر میدن و اون نگاهه تو فقه هم وقتی میگن مقارن میاد با مذاهب فقهی بحث میکنه و در واقع به این شکل که امامیه با سایر مذاهب امامیه با سایر مثلا با حالا من یه تیکه که امروز محضرتون عرض میکنم با مالکیه با هنابله، با شافعیه با معتزله که مثلا فقه اهل بیت علیهم السلام فقه امامیه چه نظری داره؟ نظر مشهورش و چیه؟ بعد میرن مقایسه میکنن که اون فقه نظرش اینه، این فقه نظرش اینه، این فقه هم نظرش اینه. این درس رو دو واحد قرار دادن. قاعدتاً دو واحد نمیشه به صورت استدلالی مثلا بیان یک دستتون در نکنه. موضوع فقی رو بحث کنیم بیایم استدلال های تمام ها رو بگیم اما خب از اون طرف هم بخواییم بحث حفظی ببریم جلو خیلی سمره ای نداره لذا باید یه مدیریت کلاسی انجام بدیم ما که بعضی از کتاب ها معرفی بشن کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده فقه مقارن و نکته دیگه این که اون محلهای های اختلاف شدید رو پیدا بکنیم کجا خیلی با هم دیگه چالش داریم تو سرفصل درسیتون که ارائه شده برای این درس سلام چه ناشت حالتون چطوره تو سرفصلی که تعیین شده برای این درس نوشته بررسی مهمترین مباحث اختلافی در باب عبادات، عقود، ایقاعات، احکام در واقع همون 4 در واقع ما 14 بخشم داشتیم دیگه عبادات، عقود، ایقاعات و احکام طبق تقسیم بندی که عرض کنم جناب شهید این تقسیم بندی رو داره صاحب شرایع این تقسیم بندی رو داره که به چشم این رو باید بحث کنیم خب ما هم بعضی از این نکات رو خدمت شما عرض خواهم کرد بهش میرسیم حالا یه نکته نکته دیگه ای هم که ما تو این بحث دنبال خواهیم کرد یه سری مباحث حقوقی رو هم من خودم اضافه میکنم چون دیگه اینجوری نیست ها ما یک کتاب رو محور قرار بدیم بگیم ما از این کتاب از اولش بخونیم تا آخرش قایداتا کتاب های دیگه و مختلف ما استفاده خواهیم کرد و محل های اختلاف رو پیدا خواهیم کرد هم در باب فقه و هم در باب حقوق و هم در واقع با مذاهب دیگر اسلامی و حتی میتونیم گایی قاید گا تطبیقی بدیم با قرب و شرق ببینیم اونا چه کار انجام دارم چه منبعی اونها دارن حالا اونا که چیزی به نام آیات الهی و روایات که ندارن سنت که ندارن که قرآن که ندارن قایدتا بردن بحث رو عقل و عرف رو عقل و عرف مثلا نرز در امریکا بعضی از ایالاتش با هم دیگه تفاوت داره چون عرفش با هم تفاوت داره حتی رو مشاقل بردن یعنی حقوق رو گایی اوقات بر اساس شغل شخص حکم رو اساس شغل این آقا میدن یعنی این آقا با همین شهر چیز دیگری بود شاید حکمش هم یه چیز دیگری بود بر اون اساس مثلا بحث رو دنبال میکنن اما در فقه امامیه خب ما یه منابع محدودی داریم در این محدود بودن این منابع مون گسترده هم هست یعنی میتونیم بگیم هم جامع افراد منابع ما هم مانع جامعیت جامعه از دیگاه خودمون چون احکام ما متصل به قانون وحیه متصل به در واقع قانون الهیه اونها هم حتی همین بالاخره میخوان حج بگه که حکمی که خدا در این شرایط چه حکمی داشته در واقع حرفا یکیه حالا فقط مسیرهاش در واقع فرق و اشتباهات که تو مسیر شکل میگیره و یعنی اونا هم دنبال همین هستن آیات قرآن روایات اجماع و عقل با اهل سنت ما یه اختلاف عمیقی داریم تو بحث اجماع یعنی تو این فقه مقارنه خودمون یا اگه اشتباه هم گفتیم مقارن دیگه این غلط مصطلعی از اینما تو جلس اول بدونید مقارن و مقارن حالا مثل فقه, مؤسر، فقه مؤسر. چه معاصر چه میگه معاصر معاصر میگه معاصر مثلا درسته حالا کاری ندارم این اون قسمتی که منشأ در واقع اصلی یکی از این اختلافات ما شده یکی بحث اجماعه چون ما در فقه شیعه اجماع به ما و اجماع که بخواد یه اصل باشه یه قانون باشه پذیرش نشده به قول جنابای صبحانی میفرماند اگر هم ما بحث از اجماع رو مطرح میکنیم تعلیف قلوبه فقط میخوایم که اهل سنت گارد نگیرن در مقابل ما بگن ببین شما از روز اول با ما مخالفید نه ما گارد برای اینکه گارد نگیرن اونها میگن ما ببینید از دقیقه اول که میخواد شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم منابع چیه ببین با ما اختلافتون رو شروع کردید شما برای اینکه این گارد گرفته نشه اینم خودش یه اصله دیگه یه تکنیکه ما میگم آواش حرف شما درست اصلا منابع شما میگید چارتا تا ما هم میگیم چارتا تا میگید اجماع ما هم میگیم ولی باید بیاید اجماع رو در جای خودش ما در کتاب های اصولی بحث کردیم اجماع رو به تعبیر جناب شیخ انصاری درست میگه همه اهل سنت یه تعبیری داره در رسائل ایشون اول رسائل اینو داره دیگه میگه الاجماع او حول اصل الهم یعنی همه هویت و ماهیت اهل سنت به چه اصلی بوده اجماع پس الاجماع و هم اصل الله یعنی اجماع مدافعش پشتوانش کیه فقط اهل سنت یعنی اهل سنت پشتوانه و حمایت کننده از قاعده اجماع هستن و قاعده اجماع واسش که به کی هویت داده به اهل سنت مجبور هستن ازش دفاع بکنن چون شیخ انصاری میگه اصلا هویتتون به اجماع اجماع رو ازتون میگیریم چیزی ندارید شما اجماع میخواد هویت پیدا کنه کی بهش هویت میده اهل سنت لذا یکی از ریشه های اختلاف ما در فقه بین شیعه و غیر شیعه امامی و غیر امامیه یکی بحث اجماع ای نکته نکته دوم ریشه و منشأ اختلاف به وجود اومده که ما اگه عرف فقه مقارنش درست کنیم که این ورد درسته اون ورد غلطه بحث سنت اهل سنت یه تعریفی عامه بگم عامه یه تعریفی از سنت دارن امامیه یه تعریفی داره تعریفشون هم تو اینه اشتراکات تعریف چیه هر دو تا چه امامیه چه عامه میگن عبارت از از قول فعل تقرير اختلاف در کجاست ما میگیم معصوم ما میگیم معصوم یعنی امیرالمومنین علیه السلام رو شامل میشه و سایر معصومین رو ولی اونها میگن قه و تقریر خصوص پیامبر اینم یه منشه اختلاف شده یعنی چی کجا اختلاف درست می‌کنه این مثلا مجموعه روایاتی که بیاد از سایر اهل بیت علیهم السلام اونا دیگه قابل قبول واسهشون نیست و اگر ما بخوایم فقه رو ببینید دوستان یک زمان شناسی بخوایم بکنیم فقه رو برگردونیم به کلمات پیامبر پیامبر 23 سال دوران بعثتشون بود تو بیست و سه سال یه ده سال یه سیز سال این مکه و مدینه و شرایطی که در اون دوران بود و اصلا امکان پذیر نبود که بیان تمام احکامی که مبتلابه هستش حالا چه خود حکم رو سریحن بیان بکنند چه بیان قاعده ای رو به ما یاد بدن که ما بعدا بتونیم در واقع برداشت بکنیم استدلال بکنیم اجتاق بکنیم این کار صورت نگرفت طبیعی بود که صورت نگیره خب دوباره اونا محدودیت پیدا میکنن در روایات محدودیت پیدا شد ولی ما این محدودیت رو نداریم ما عادیس پیامبر رو داریم میاییم بعدش تا همین الان هم اگر یه توقی از وجود نازنین حضرت بقیه الله صحیحا به دست ما برسه قابل استناد هست یا نیست هستش ما با به اسمت چون بسته نشده که چون بسته نشده ما یه توسعه داشتیم اهل سنت دوباره این توسعه هم نداشتن پس ببینید یه توسعه ما داشتیم در بفرمایید که سنت اونها یه توسعه داشتن در اجماع اونها یه چیز درست کردن به نام اجماع ما اومدیم توسعه دادیم در سنت درست شد؟ این است میاد تو مباعث عقلی دواره آیا تو مباعث عقلی اختلاف وجود داره بین اهل سنت و تشعیب بین امامیه و آمه اینجا دواره آیا هست یا نیست؟ این دوره به بحثه ما داریم مباعث عقلیی که مثلا عرض کنم مستقلات عقلیه یا غیر مستقلات عقلیه چون ما اختلاف داریم در سقرا در سقرای قول محصول ما اختلاف داشتیم دیگه یا در سقرای اجما ما اختلاف. قاعدتا اختلاف در سقرا بیا تو استدال قرار بگیره استادای عقلی ما هم چی پیدا میکنه اختلاف پیدا میکنه مختلف میشه لذا چون در اونجا ما در سقریات با هم اختلاف داریم ولا توی کبرای استدلال با هم مثل هم باشیم و هم نیست لذا استدلالات عقلی اونم خیلی شباهت به هم پیدا نمیکنه. اینجا هم دوباره یک محله نزا پیدا می بیایم سر قرآن سر قرآن ما یا در قرآن با اونها اشتراک داریم اشتراک تام یا نداریم دور عرض میکنم ببینید ما بسیاری از در اوها قرآن تفسیر شده بهترین مفسرین قرآن هم کی بودن؟ خود زبات مقدسه محصومی ما بسیاری از استدلالات فقهی که امروز ارائه میدن استفاده میکنن از روایات بگید تفسیری درستان اصلا یه ای در علم گسترده تفسیر ایجاد شده به نام تفسیر روایی یا تفسیر آخری درست شد؟ با سه نقطه دیگه اثر خب این ایجاد شده خب دوباره ما میبینیم که ما استناد میکنیم به قرآن یه برداشتی میکنیم با توجه به روایت اونا مراجعه میکنن یه برداشت تجاری میکنن راجبه ببخشید راجبه آیه ما یه تفسیری میکنیم چون ما تفسیر داریم تفسیر روایی داریم اونها نه دستشون از این تفسیر پوتاهه لذا یا مجبورن قرآن رو با قرآن تفسیر کنن مثل این کتاب تفسیری که هست از واءل بیان فی تفسیر القرآن بل قران مثلا الحمد اول الله رب بلال ما معنی الحمد شروع میکنن از آیات دیگه چیزی که ارتباط داره با همد کنار همد قرار میدن سرات مستقیم ما معنا سرات المستقیم میان از آیات دیگه استفاده میکنن برای تفسیر سرات مستقیم حالا آیا تو تفسیر اهل سنت اینا موفق بودن یا نبودن؟ یه جا به زعم خودشون یه توفیق نسبی دارن و سرمایه کلن عامه تو این قسمتی که میکنن اون تو یک مباحث الفاظ دوستان مباحث الفاظ شما نها کنید عدبیات که شامل صرف، نفت، معامی، بیان بدی لغت اینا هستش می‌بینی سرچشمش همه به کجا میخوره اهل سنت سرچشمش بخوره به اهل سنت لذا اینها میبینی سرمایه اصلیشون رو تو حوضه های علمیه چی دارن الفاظ و ادبی دارن جان نه به خاطر این بوده که منابع در دست نداشتن اکثرشون ایرانی هستن همون آره منابعی ندارن اصلا منابعی تو دستشون نیستش دیگه ببینید که بله که اگر عرب هم نبوده شد نه اصلا هم... ایرانی که مثلا سنی بوده بازا تو اون دام افتاده اینا تو ادبیات قرق شدن و چون زبان قرآن عربیه لذا مباقص لفظی قرآن رو خیلی توصیح دادن اونها مثلا مثال ارز کنم به مختلف ارائه میدن از آیقونات بعد هر ترکیبی یه دونه معنا داره خود نیجاده چی میکنه؟ شبه مثلا زمخشری تفسیر کشافه ایشون تقریبا یه تفسیر ادبیه. درست شد که مجمعال بیان ما در مقابل اون قرار گرفت خب شما نها می کنید بسیاری از اقاعد اهل سنت و چه کل عقیدهی کلامی خودشون رو چه عقیده فقهی خودشون بیشتر میبرن سر مباحث الفاظ ترکیب قرآن تقدیر گرفتن نمیدونم فا فارو چه معنا کردن شما کنید مثلا تو ابن شام یا آقا با اجاره 22 تا معنا داره تازه یه جم بابشو باز بیزاره مثلا میگه آقا یه بایی هم داریم بای زائده آها این ای دیگه حالا یه جم بگه آقا یه تأکیده. یه این با... حرف حرف ادبی برای خودش بلاخره اون هم استنادات خودشون رو دارن دیگه ولی میخوام بگم سرمایه شون چیه؟ الفاظه این سرمایه رو بهش میناسن و خیلی هم تو حوزایی علمیشون نسبت به این مبعث کار میکنن که در ادامه این که حالا مین تو بحث حافظه نوری که هنرشون چیه حص الان؟ حفظه قرآ هنرشون دیگه میتونی من بگی بیا هنره درست چه چیز دیگه ای نداره که سرمایه دیگه ای نداره، سرمایهش قرآ حفظ میکنه بعد بخواد منم محکوم بکنه با چه مبایسی منو محکوم میکنه؟ تن تن آیات میخونه ترکیب میکنه تراکیب مختلف میکنه. چون اینی زعمحشری با همین شیوه قشنگ داره بحث خودشو جان دکتر رو جلو میبره. مثلا آقا این فا رو من این بگیرم این میشه اینو اگر مثلا متعدی بگیری این میشه جامد بگیری این میشه اینجا یه چیزی در تقدیر مضاف در تقدیر مضاف به ببین این مبایس یکی این سرواي تو دستشونه دو مدعیان اهل سنت مدعیه که ما مبتکر علم اصول هستیم مبتکر علم اصول میگن ما خب استدلالشون هم به زعم خودشون منطقیه دیگه میگن خب پیامبر وقت روایات که پیامبر که محدودیت بود دیگه محدودیت دو زمان پیامبر بعداشن بعد رحلت پیامبر هم که باب اسمت بسته شده ارتباط مخ... خب میمونه بحث اجتهاد اجتهاد خب از چه ابزاری میخواد اصول اصولم الان نگاه کنید شما الان تو کتاب اصولی که ما میخونیم بیشتر وقت شما صرف چی شد باز مباحث الفاس باز مباحث دوباره الفاس که به قول جناب مزفر میگو کمکاری هایی که باید تو عدبیات بوده رو ما مجبور شدیم تو اصول بیان جبران کنیم بیاییم دور راجعه به الفاظ مثلا بحث کنن بعد دوباره مثلا ماده امر یا سیغه امر چه معانی داره شما همه معانی میره از اهل سنت گرفته شد یعنی تو کتابای اصولی ما معانی که برای ماده امر می نویسن از کجا گرفتن میبینیم همه رو پیدا مو کنن تو تو اهل سنته اینا مدعی هستن ما گره مبتکرش هستیم مبتکرش میگن ما این. البته شیعه هم در مقابلش میینه اتفاقا اولین کسی که دعوت کرد مردم رو به استفاده از علم و اصول خود زوات مقدس معصومین بودن که راه اجتهاد رو یاد دادن به بعضی از اصحابشون و دعوت میکردن بعضی از اصحاب رو که در واقع بشینن در مجلس و چه کار کنن؟ فتوا بدن بشینن و فتوا بدن با استفاده از حالا روایات یا با استفاده از آیات بلاخره این اختلاف الان هست قدیم بوده هنوز هم اونا خودشون مدره خب ما یه موقع بحث تدوین علم رو داریم با امان یک فضیلت و فرقش اینجاست اگر ما بیایم بگیم که علم اصول توسط اهل سنت اختراع شده یا در واقع نوشته شده ما یه چالش زمانی پیدا می‌کنیم که شیعیانه در واقع بعد از رحلت پیامبر چیکار می‌کردن اینا عمل میکردن همه که اینجوری نبود که همسایه مثلا امیرالمؤمنین باشه مسجد کوفه باشه بیان در مثلا بگن آقا مثلا ما قصر چی چیکار بکنیم من من شک کردم چیکار بکنم آقا مثلا من وضو داشتم ارز کنم خدمت شما الان شک دارم وضو باطل شد یا نبیاد بگه یکی میگه غسل داشتم حالا شک داشتم یکی میگه اینا, اینا چی بوده ما میگیم نه ما میگیم روایاتی ما که اصلا اتفاق این روایت اصولیه لا تنگوزل یقینه به شکه عبدالایی روایت روایت چیه؟ اصولیه میاد مبنه چی رو به من یاد میده؟ استصحاب رو به من یاد داد با این نیست؟ نه روایت نروی نیست یعنی ما میخواییم بگیم که ما اتفاقا زمان معصوم خودمون با این چالش مواجه بودیم و امام ما چاره بر ما درست کرد یه مندوهی راه فراری بر ما درست کرد که آقا چه شما؟ استصحاب جاری کن لا تنوزل یقینه به شک ارادت یا مثلا اون روایت معروف که پان خورد به یه سنگی خون افتاد چیکار کنم اینا چیزایی بوده روایاتی بوده که اتفاقا ما مدعی هستیم که ما در همون دوران مواجه بودیم با این مشکل و این مشکل هم توسط اهل بیت برای ما حل شد بعد نسبت به توسعه علم اصول اونا در واقع برای خودشون یه اصول مهم میدارن برای خودشون درست شد ما؟ که اصولشون دواره سقل بحثش میره تو مبایث چی بگید آقا الفاظ چون روایات که ندارن که میره سقل بحث تو مبایث بله متفاوته با چون متفاوته شما اصول خودتون ما اصول خودتون اونا میشتر ارز اصولشون مبناشون اجماع و قرآن قرآن هم با چیه مباعث الفاظ میبرن جلو یعنی هر جا که در واقع بخوان بخون من رو پیچش خودشون هست حالا این وسط ما وظیفه چیه این سرفصل درسی رو گذاشتن اینکه آشنا بشیم با بعضی از نظرات اونها و یا تقسیم بندی هایی که اونا دارن و بعضیش خوبه آدم به چالش بکشه شون. بعض، بعضیش هم صرفاً این آدم اطلاعی داشته باشه که چی هست و جالب خودشون هم با هم اختلافات زیاد دارن کما اینکه تو امامیه این اختلافات وجود داره. داره چون باب بله چون باب اجتهاد دوستان باز دیگه یعنی هیچ اشکالی نداره بس همونا تو خودشون اختلافات رو دارن همون یعنی اگه به ما ها چیه چرا اونها هم, هم یعنی یه اختلاف کل دو در واقع امامیه و عامه با هم دارن تو خودشون هم ریز اختلافات و ریز موضوعات اختلافی هست مثلا عرض کنم خدمه شما یک کتابی هست کتاب الفقه علا مذاهب الاربع من اینو کپیش گرفتم اون کتابشو میارم 6 جلد این کتاب درست نمی؟ دورو بزرگی هم چارجلیش هم اومده که جدید, جدید. جدید چاپ کردن آره. نمیرون که این کتاب کنه باشه یا نه تو قسمت سلاتش حالا من عکس انداختم از آشو گرفتم راجع به شروط سلات صحبت کرده مثلا ما می‌دونیم که سلات یه سری شروطی داره حالا مثلا ببینید مالکی اومده چی گفته؟ قشنگ دقیق بفنوایی ده وارد شد بخونم قالو میخوره مالکیم تنقسم و شروط و سلاته الى سلاست اقسامه میگه سلات سه قسم شرط داره یک شروط و وجوبه فقط دو شروط و سهته فقط سه شروط و وجوبه و صحت معن یعنی برای سالات سه شرط ما لکيو شرط صحت فقط شرط وجوب فقط دست گفتم دستو درنکنه گفتم با و... لک دنیا همه کلاسی پیدا میکنید و... شما چایو نمیدونم مثلا همه چی از شما خدا روز اول تشکر اینا روز اول ما خیلی خوب موافقت تا چایرا استفاده می‌کنم تداوم تا می‌تونید اصلا این ایام این ایام ایام باید یه چی میگن ایسکا صلواتی اجباصه دمه درست بود ایسکا تو معلم من ندیدم دیدم زدن قهوه نمیدونم چای عربی چای بهلیگو چای مدتی از آداری ها چه نه موتور از مجالس افت کرد به خاطر جمودی ها و این کرونا و اینها اسکزلواتی اینجا اینو افت کرد خیلی کوفا شده بود من آره. چی فردا میآوردم حزم می‌دادم یکی مثلا فقط با کوچاتو چابتچه ولی اسکزلواتی آره از همون لحظه‌ای که دایم میشد می میخوام ماشین میارم آره آره هوا میارم به همه چی آره. آره. من است اله ماشالله نه علمدان تو تو معلمو چای تورشم دادم متفق رفتم صف چای تورش وایسادم خیلی خوشمزه بود آره <تصح> یه اتفاقی که یه اتفاقی که برام افتاده بود مثلا یه درستش کرده آمه شیل میخریدن تولید نمیگردن خب مالکی میگه میگه ببینی سهن و شروط داره شروط وجوب شروط صحت شرط صحت و وجوب این از این میاد صفحه بعد شافه یه چی میگه شافه یه ما دو رو شروط داریم یه شروط وجوب داریم یه شروط؟ چه میاد صفبه بعد حرف چی میگه؟ میگه ما دو تا داریم شروط داریم شروط وجوب دوباره شروط سه خال میکنم دوره بعضی 맛 می... حالا امام چی میگه؟ یا ما یه شروط صلات داریم یه شروط مسلی داریم یا بعضی از شرایطی که شما دارید ده. حالا من شرایطو بخونم براتون من از اول شیدویست. کتاب <تصفيق> کتاب الفقه <تصفيق> على مذاهب الاربر صفحه دیویست و من آره شست و هفته, من آره. و شس و هفته من الان براتون دارم می کنم نه داشتم خوره با موبایلم اکس گرفتم و اینجا مذاهب نه مذاهب العربه. اینه نمیدونم اینجا باشه یا نه. اَره ببینید بعد مالکیه میگه شروط سه به شرط وجوب بعد میگه خود وجوب دو تاست. خب آره دو تاست. میگه چیه شرط وجوب؟ میگه یکی بلوغه، دومیش دو قشنگه. تقریباً تو این همه یکه. میگه عدم اکراه بر ترک. یعنی کسی مجبور بر ترک من نکن یعنی یه ظالم به نخون چی از من برداشته میشه؟ وجوب از من برداشته میشه میگیم من چیزی به نام وجوب ندارم. میگیم شرط صحتت چیه؟ میگه پنج دادارم میگیم چی؟ میگه یک تهارت از حدث تهارت از خبست اسلام قبل سطر عورت سطر. بعد میگیم شرط وجوب و صحت که میگیم معن هستش اینا چی این معیت ها به چی میگرده میگه ها اینا دوره 6 تاست یک بخونم عین متنشو بلوغ و دعوه صلی الله علیه و آله و سلم بلوغ دعوت یعنی چی رسیدن اصلا من حکم حکم شریعه دست من بگی برسه اول بعد من برسه دو دو دخ... ولعقل عقل و شرط چی گذاشته؟ نه وجوب گذاشته نه صحت میگه هم صحت هم وجوب میگه سه دخول و وقت صلات هم شرط وجوب هم شرط صحت 4 بله الخلو من دم الهیز و نفاس که مبتلا به نیست برای آقایون و آخرش میگه ول اسلام میگه هم شرط وجوبه هم شرط سه میگه مثلا شافعی شافعی یا شرط وجوبه یا شرط سه یا با هم دیگه نداریم که هم شرط وجوب باشه هم سه میگیم اینا چیه میگه بله قسم و شروط از صلاته الا فقط شروط الوجوب و شروط و سه حد. اما شروط الوجوب اندهان فهیست تاتون. میگه در نظر اینا شیشت هست ببینید چه چی میگه اولیشو میگه شرط وجود بلوغ و دعوت نبی اون گفت شرط چیه صحت امی میگه شرطه وجود درست ول اسلام امی میگه شرط وجود به اون میگه شرط صحت بله ول عقل ول بلوغ و النقاء من دم و النفاس درست شد اما شرط صحتت چیه؟ میگه است. بخونم حالا شرط صحتش تهارت البدن من الحدسان درست؟ تهارت صوبه تهارت مکانه، سطر العورته استقبال القبلته العلم به دخول الوقت درست شد؟ العلم کیفیت. یعنی نماز خوندن هم بلد باشید و این کاملا با هم دیگه متفاوت شدن هم در نامگذاریشون هم در عدداشون میاد دوباره حنفیه چی میگه؟ دورم میگه قسم شروط از صلاحات علاقست من شروط الوجوب و شروط سحه کش شافعیه می تا اینجا مثل شافعی هستن میگه اما شروط الوجوب فهیت خمسطون درست؟ میگه دوره بلوغ و دعوت نبی و اسلام ول عقل و بلوغ و نقا میگه و کسی رو من الحنفیت لم یذکر بلوغ, بلوغ دعوت خیلی قشق استدار اینو خوندم به خاطر استدار میگه چرا بلوغ دعوت نبی رو نمیگن؟ میگه اکسران اصلا نگفتن این چرا این نگفتن میگه اکتفاهم اکتفا به اشترات الاسلام میگه وقتی تو اسلام رو شرط میکنی دیگه این تحصیله حاصله دیگه لذا میگه اشتباه کردن میگه کسانی که میان بلوغ دعوت نوی رو میگن پس شرط اسلام رو حصف کنن یا باید این باشه یا موید. میشه دوتاشو بیاری که هم اسلام هم بلوغ دعوت نوی چون اینا اسلام فقط به واسه چیه؟ لا نبو... نبوتو قبول دارن چیزی به آره نام هست. هست. که دیگه اصلا دعوت به صلات دعوت چون شواادت این به ولی خب ما شاید مثلا هستیم هنوز که صلات واجب هست نه ببید. اگه اینجوری باشه پس در تمام احکام شرطی شرعی بعد این شرطو بذارن یه شرط لغویه باشه تمام باید پس خب ببین ای که شرط لغوه خب, خب قطعاً هم هم چیزی بر من واجبه که به دست من اگر اسلام رسیده باشه اگه نرسیده باشه که اصلا خب اگر اسلام شرط باشه داردنوی داردنوی هم نه, نه نه چرا شما وقتی مسلمون نیستی چه ضرورتی داره که اصلا این بحث رو بحث وجود بسته بله بحث بحث اینه که آیا بر کفار این واجب هست یا واجب؟ این کافر اگر اسلام آورد آیا باید قضاشو انجام بده یا قضاشو انجام نده این, این سمره داره این آ این سمره داره این علیه اسلام به ما قبل قیده جب که میگه نسبت عبادات؟ نه نسبت به حقوقه ببید. که مثلا میگه اگه طرف طلاق داده قبلن طلاق قبلن مثلا به چه سیغه ای میده اصلا سیغه نداشته مثلا چه میگم یه شطور میداده بهش میگفته خونه برو بیرون درست شد بعد اسلام های گوه آقا باید سیقه بخونی بگیه انته تاله خون آلا میگه آقا من تبقیه بگیه با الاسلام یا با ما قبله بایده جبه درست شد و این استاد عبادتی عبادتی انجام میمیده که. حالا آیا قضاش واجب هست یا واجب نیست حقوقی پیدا میکنه سمره عملی پیدا میکنه لذت به نظر میاد این شرط شرط لقوی باشه اما شروط صحتش نوره چی؟ دقیقا مثل اونا میگه تعارت و از حدث و خبر و مکان و سطر عورت و یه دونه اضافه میکنه اینجا نیت چی اضافه کرد؟ نیت رو اضافه کرد یه اروقت اونا اصلا چیزی بنایه نیت دیگه نداشتن اصلا هیچ کدوم بحث نیت و مطرح نکرده بیایم مولا امامیه چی میگه؟ امامیه میگه میگه آقا شروط سالات. آسان کلا امامیه میگه ما یه شروط صلات داری یه شروط مصلی این که شما میای میگی سطر عورت این شرط چیه مصلیه مصلی کسی که میخواد باید نیت داشته باشه نیت شرط چیه مصلیه بعد میگیم شروط سالات چیه شروط صلات امامیه میگه ما یه شروط عامه داریم یه شروط خاصه داریم شروط عامه منظور چیه همون شروط اصل تکلیف همون شرایط عامه نه فقط نماز همه چی یه شروط چی داریم اون موقع خاصه داریم ما پس ما نگاه میکنیم بخوایم یه تطبیقی بدیم بین در واقع امامیه و اهل سنت می‌بینیم بله اشتراکاتی پیدا میکنیم اما موارد اختلافی زیاد داریم که مثل همین حتی خودشون هم با همین رو داشتن حالا شرایط عام تکلیف ما چیا ها بودن یادتونه بلوغ خدرت. عقل قدرت درست شد بلوغ عقل قدرت این رو به عنوان شرم بیان میکنن همه اینا هم برای خودش منبع داره دیگه آه مثلا قدرت منبعش چیه لا یکالف و لا نفسن الا وصعه ها خب حالا یه تیکه بخونم از این ای تیکه عمل اسلامو فلیس من شروط آل آمته آل تکلیف فتکالیف و شرایط المسلمه که ما تتجویل المسلم تتجو کافره ایزن درست شد چون هر کس انسان شد عقل داشت قدرتم داشت نماز براشیه واجد بزا... اسلام رو جزو شرایط میخواد کافر باشه میخواد آفرین درست شد و یستس نام من زالک آها آقا پس کافر اگر مسلمان شد قضا به جا بیاره میگه یستس نام من زالک وجوب و قضا الصلاه و ی و صیام فئن الکافر یخاطب شرعا به سلات و, و سیام فی اوقات اما ولیکن لا یخاطب به وجوبه بگید ما. قضا ازش چی میشه؟ لیزه میگه اصلا نیشون در امامیه اسلام رو به عنوان شرط آمه تکلیف ما نمیاریم شروط خاصش چیه بگید؟ شروط خاص سلات؟ روبه قبله باشه، تکبولت رهران همون واجبات رکنی و همه این مبایث سلات میا. در واقع الان یه مقایسه ای شد شروط صلات بین اهل سنت و بعضی از مکاتبشون با امامیه چای چای مو هم ساعت چنده دو سه و دو خوله وقت وقت ببینید دخول وقت یه قید هم بعضی لازمیه یعنی زنن یه موقع شما علم به دخول وقت رو یه موقع بگید مشت خود دخول وقت نه طریق نمیدی و میگه شرکتی مثل به طوارت نه خود ما نمیدیم دو وقت هم و علم پیدا کنیم لذا قید ولو چی میارن؟ زنن به همین خاطر چه میشه مثلا وقت اذان ظهر حالا مثلا یه دقیقه این ما رو دارن ال... ببینید علم های... مد حاصل بشه یا زن معتبر حاصل بشه انت... علم حاصل شد باشد، آه... از بیه طریقی علم حاصل کردی دیگه, دیگه؟ از آن بشنبه اینا نباشه دیگه از آه... دیگه شنیدن اذان مثلا رادیو که اصلا ملاک ما نیستش اثر آه... میذاره بله مثلا مؤذن میتونه یه اماره ای باشه حکومت نه. اسلامی خیلی چیز رو بود تحقیق دارم میسنجم بعضی عطا میباشی بعضی در جده فردش باستی ولی آقامی هم نمیشه فرد ازانی فرش میشه وقتی ازان مقرد که یا جا برود داری آقام بدون بشه نه بس. همه این خورشید میره این... پایین این خورشید میره می پایین میره پایین تاریخ میشه ازانی آه. نه، هنوز آقا رو بیشن نه، رو بزر بفتر اون مردی هنوز آقا رو بیشن میشه اون که تنمیم 20 صدر مونده به گروب آقا اونا، روشن. اونا گروب میشه اونا آره، ما کاری اونا ندارد. نه، خوشی هم خیلی داریم، گروب میشه، هم نماز هم چرا روخاه ها نهیمدن؟ آره، ای مکاره، با میگن ده تا خورمک میگه نکنه میخواد بعد از ظهر ما بس یه خب غثش امروز بست. دیگه بسو دوست عزیز من اینو قتش کنم دیگه برای امروز.